با سلام خدمت مخاطبین کانال هزار افسان امیدوارم که حالتون خوب باشه داستانی رو که میخوام بهتون تقدیم کنم از کتابیه که مشخصاتش زک شد به نام سمار ماهی یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود در روزگاران قدیم ماهیگیر فقیری تو روستایی نزدیک دریا زندگی میکرد و هر روز به دریا میرفت و ماهی صید میکرد یه روزایی شانس داشت و ماهیهای زیادی صید میکرد و یه روزایی هم اصلا ماهی رو نمیتونست صید کنه تو یکی از روزها که به دریا رفته بود، و انداخت داخل آب و وقتی بیرون کشید دریغ از یک دونه ماهی. اصلا نتونسته بود ماهی رو سید کنه و بهجاش سه تا مار ماهی داخل تورش بودن. عصبانی شد و فریاد زد و گفت لعنت به این شانسی که من دارم. اما یه دفعه یکی از اون مارماهیها به صحبت اومد و گفت ای مرد فقیر چرا نفرین میکنی و داد میزنی اتفاقا تو خیلی خوشبختی که تونستی ما رو سید کنی و بخت و اقبالت بلنده اون چیل که من بهت میگم رو گوش بده و به خاطر بسپار و انجام بده یکی از ماها رو انتخاب کن، بکش و ببر بده زنه تا غذا درست کنه. وقتی اون غذا پخته شد، اون رو به چهار قسمت تقسیم کن. یه قسمتش رو بده به زنت بخوره، یه قسمتش رو بده به اسبت، یه قسمتش رو بده به سگت و قسمت چهارم اونو تو باغ پشت خونه دفن کن زیر خاک. وقتی این کارو بکنی زنت برای تو دو تا پسر قلو به دنیا میاره و اسبتم دو تا کر اسب و سگتم دو تا طول سگ به دنیا میارن و پشت خونتم وقتی که ما رو دفن کنی و خاکش رو زیر و رو کنی دو تا شمشیر طلا پیدا می ماهیگیر خیلی تعجب کرد اما به گفته این مارماهی عمل کرد یکی از اون مارماهی ها رو کشت و به خونه برد و دو دوتای دیگر رو داخل آب انداخت یک سال از این پیشگویی اون مارماهی می که تمام حرفاش به نتیجه رسست زن ماهیگیر پسر دو قلوب دنیا آورد و سگش دو تا طوله و اسبشم دو تا اسب زایید و وقتی عقب خونش رو با بیل خاکاش رو جابجا به دوتا جا دو تا شمشیر طلا پیدا کرد و با پسراش به خوبی و خوشی زندگی می کردن. تا اینکه که کره و کرعصبها و طول سگا با هم بزرگ شدند و دو تا جوان برومند و قوی و زیبا شده بودند. یه روز یکی از اونها به پدرش گفت پدر من میدونم شما فقیر هستی و من تو ماهیگیری به شما کمک می کنم و میتونیم به سختی غذا به دست بیاریم و زندگی بخور و نمیری داشته باشیم اما من احساس می میکنم که سربار شما هستم اگر به من اجازه بدی من میخوام برم دور دنیا بگردم و بخت و اقبال خودم رو آزمایش کنم من میخوام با اجازه شما یکی از عصبها و یکی از سگها و یکی از این شمشیرها رو با خودم ببرم و اصلا نگران من نباشین برای ماهیگیر اگرچه سخت بود که از فرزندش دور بشه و جدا بشه، اما خوشبختی بچهش براش مهمتر بود، به خاطر همین خواهش پسرش را پذیرفت و با دعای خیر اون رو راهی سفر کرد. برادر دو قلو وقتی دید که برادرش داره میره سفر، اون پیش پدرش موند و گفت که من پیش پدر و مادرم میمونم. اما وقتی برادر دیگه داشت میرفت سفر یه شیشه کوچیکی که پر از آب زلال بود به اون برادری داد که میخواست بیشه پدر و مادرش باشه گفت ای برادر من دارم تک و تنها به این سفر دور میرم از تو خواهش میکنم که از پدر و مادرمون خوب نگهداری کنی چون پدرمون مرد فقیر و بیچیزیه اما فرد درستکاریه و قلب مهربونی داره پس تو سعی کن که برای اون پدر فرزند خوبی باشی اما این شیشه رو از من بگیر و پیش خودت نگه دار هر وقت نگاه کردی آب اون جوشید و تیر رنگ شد بدون که من مردم و اینو گفت شیشه رو به برادرش داد و خداحافظی کرد برادر دیگم بهش گفت من تو رو به خدای بزرگ می‌سپارم. برو برادر سفرت بی خطر. و هم دیگر رو در آغوش گرفتند و از هم جدا شدند و مرد جوان از این شهر به شهر دیگه می رفت تا سرانجام به پایتخت کشور رسید همون جوری که از خیابونهای شهر می گذشت دختر شاه که داخل عرابه بود از پنجره عرابه بیرون رو نگاه می کرد. و اون رو دید و یک دل و نصد دل عاشق این جوون قسته ما شد و دخترش رو از اونجایی که عادت داشت همه حرفهای حرفای خودش رو به پدرش میزد و با پدرش مشورت می کرد. از ترس اینکه مبادا این جوون از قصر دور بشه و نتونه دیگه اونو پیدا کنه سریع نزد پدرش اومد و گفت ای پدر مهربون ای شاه مملکت میشه این جوون رو به کاخ صدا بزنی چون من از این جوون خیلی خوشم اومده شاهم که همیشه آرزوهای دخترش براش مهم بود و دوست داشت که آرزوهای دخترش رو برآورده کنه به یکی از نگهبانای قصرش گفت برین و اون جوون ماهیگیر رو صدا بزنین و بیارین داخل کاخ جوان که سوار بر اسبش بود و سگش هم دنبالش میدوید وارد کاخ شدن و همه فهمیدن که این جوان و اسبش و سگش چقدر زیبا هستند و دختر شاه هم عاشق زیبایی پسر و اسب و سگ این پسر شده بود و وقتی که شمشیر طلای این پسر رو که در نور آفتاب می درخشید نگاه کرد خیلی تعجب کرد و به پدرش گفت پدر من عاشق این جوون شدم و اگه شما اجازه بدین من می با این جوون ازدواج کنم. و چون موقعی شوهر کردنش رسیده بود پدرش چند دقیقه ای فکر کرد و قبول کرد که این جوون رو به دامادی خودش بپذیره. و به جوان گفت آیا حاضری که همسر دختر من بشی؟ جوانم که خیلی خوشحال شده بود دختر پادشاه کشور عاشق شده گفت البته که میپذیرم و بسیار هم خوشحالم از این جریان. و اینجوری شد که جوان با دختر شاه ازدواج کرد و جشنها و مهمونیهای زیادی به مناسبت این جشن عروسی تو کشور برپا شد. شبی در کنار پنجره اتاق خواب جوان ایستاده بود و به آسمان نگاه می کرد. که چشمش به کوهی افتاد که زیادم از شهر دور نبود اما کوه قرق آتیش بود تعجب کرد و از زنش پرسید که این جریان این کوه و این آتیش چیه؟ زنش در پاسخ گفت عزیزم این رو از من مپرس و نخواه که من برات توضیح بدم چون توی اون کوه و عجیبی اتفاق میفته و اون کوه جادو شده و همه راجع به اون کوه حرف میزنن. در روزها اون کوه برق میزنه و در شبها همچون آتیش شله میکشه و هرکس که به دیدن اون کوه بره به مجازات کنجکاویش میرسه و تبدیل به سنگ میشه. ای شوهر عزیزم اگه منو دوست داری هیچ وقت برای کنجکاوی به اون کوه سفر نکن. اما جوان که بسیار کنجکاف بود حرف زنش رو گوش نکرد و چند روز بعد سوار بر اسب خودش شد شمشیر تلاش رو به کمر بست و سگش رو برداشت و بدون اینکه به کسی چیزی بگه به سوی کوه را افتاد رفت و رفت تا به کوه رسید و از مسیر سربالای کوه بالا رفت چون مقداری راه رفت پیرزنی رو دید که روی تخت سنگی نشسته و یه چوب دستی و مقداری علف کنارشه. جوان اون پیرزن رو دید و بهش گفت: «ننه جون میتونی به من بگی چرا این کو این وضعیت اصرار و جادویی رو داره؟ پیرزن بهش گفت البته که میتونم اما چون پیرم و نمیتونم فریاد بزنم و بلند صحبت کنم تو نزدیکتر بیا تا من بتونم جریان و اسرار کوهو برای تو تعریف کنم جوان هم که خام پیرزن شده بود نزدیک پیرزن رفت پیرزن گفت من سردمه بهتره به خونه من بریم آتش روشن کنیم و کنار اون بشینیم و من داستان این کوه رو برای تو تعریف کنم پس از جا بلند شد و به بازوی جوان تکیه داد و به راه افتادن و رفتند و تو گوشه ای از خونه اون پیرزن نشستند. اما وقتی که داشتن رد می شدن از کنارهای دیوار جوان دید که روی دیوارها استخانهای آدمی زاده و بسیار تعجب کرد. اما شک به پیرزن نکرد و از در خونه پیرزن وارد حیات اون شدند و رفتند تو خونه پیرزن چون وارد حیات خونه پیرزن شد مجسمه های سنگی رو دید که فقط دو تا چشم زده داشتن و داشت اون رو نگاه می کردن. خواست فریاد بکشه از ترس اما دیگه نتونست فریاد بکشه یا قدم از قدم برداره و اون هم مثل اون مجسمه های سنگی شده بود و به پایین تنه خودش نگاه کرد و دید که پایین شبیه سنگ شده درست در همین لحظه اون برادری که پیش پدر و مادر توی اون دهکده دور زندگی میکردن شیشه رو در دست خودش داشت که ناگهان نگاه کرد و دید شیشه رنگ تیره ای به خود گرفت و آب درون اون شیشه شروع به جوشیدن کرد. متوجه شد که برادرش احتمالا دچار مرگ شده. سری پیش پدر و مادر خودش اومد و خبر رو به پدر و مادر داد و گفت من دیگه نمیتونم تو خونه بمونم. بهتره برم و برادرم رو پیدا کنم و بهش کمک کنم. سوار اسب شد و از شهری به شهر دیگه رفت تا به پای تخت رسید. در پایتخت دختر شاه که بسیار غمگین و ناراحت بود از اینکه شوهر خودش را رو چند روز بود نمیدیده بود توی برج بلندی نشسته بود و شهر رو تماشا می کرد. که ناگهان این جوان رو دید و فکر کرد که همسرش شتابان اومد پایین تا این خبر خوش رو به شاه بده که شوهرش برگشته و اومد پایین از پله های کاخ و به شاه پیر گفت پدر همسرم برگشته و اینجوری بود که شاه به نگهبانها دستور داد و رفتند به اون جوان رو که فکر می‌کردند همسر دخترش هست به کاخ آوردن ابتدا جوون خیلی تعجب کرد که اون همه مهر و محبت رو دید اما بعد متوجه شد که اون رو جای برادرش اشتباه گرفتن و تصمیم گرفت که فعلا این رازو فاش نکنه و این راز رو پیش خودش نگه داره و نقش برادر گمشدش رو بازی کنه اما از اینجایی که شاه خیلی خوشحال شده بود که دامادش برگشته دستور داد یه جشن مفصل بگیرن و شام مفصلی بدن. بعد از این که شام رو خوردن شه دخت و برادر شوهرش به تا خواب رفتن. توی رخت خواب شاهزاده خوابش نمی برد و رفت کنار پنجره و گفت نمیدونم چرا خوابم نمی بره. و به سمت پنجره و پنجره رو باز کرد که ناگهان جوان چشمش به اون کوه افتاد و گفت ای شاه دخت این کوه چیه که در شعله های آتش داره میسوزه و از اشعله های آتیش بلنده شاه دخت بهش گفت ای همسر عزیزم چرا هر دفعه این سوال رو از من میپرسی من قبلا هم بهت گفتم که این کوه اسرار آمیزه. و بهتره که اصلا به اون کوه برای شکار نریم گفتم هرکی به اونجا بره تبدیل به سنگ میشه جوان تازه متوجه شد که چه بر سر برادرش اومده و با بی منتظر این شد تا فردا بشه و بتونه بره دنبال برادر گمشدش بگرده وقتی که خورشید اومد تو آسمون و روس شد، برادر آروم آروم از اتاق بیرون اومد، سوار بر اسبش شد، شمشیرش رو به کمر بست و سگ وفادارش رو با خودش همراه کرد، رفت و رفت تا رسید به کوه اما وقتی که رسید به کوه، چشمش به پیرزن افتاد که نشسته بود روی یه تخت سنگ و داشت اون رو تماشا میکرد اما تا چشمش به پیرزن افتاد، سری پیاده شد و شمشیرش از غلاف کشید و به پیرزن حمله کرد و به سگش رم اشاره کرد که به پیرزن حمله کنه. پیرزن که ترسیده بود او رو بکشن گفت ای جوان من رو نکش. اما جوان بهش گفت ای پیرزن اگه میخوای من تو رو نکشم باید برادرم رو به من بدی تا من برادرم رو بردارم ب... از اینجا برم پیرزن که ترسیده بود و شمشیر رو روی سینه خودش دید گفت باشه و برادرت رو بردار و از اینجا برو پیرزن جادوگر بلند شد و رفت سمت باغش و با چوب دست به جوان سنگ شده زد و جوان تبدیل به انسان شد و زندگیش رو پیدا کرد و برگشت اومد پیش برادرش دو برادر همدیگر رو در آغوش گرفتند رو همدیگر رو بوسیدند اما وقتی آدم های دیگر رو دیدن دلشون برای آدم هایی که تبدیل به سنگ شده بودن سوخت و اون برادری که قربانی شده بود رو کرد به پیرزن جادوگر و گفت یالا تمام این آدم ها رو تبدیل به انسان کن و جادوشون رو باطل کن پیرزنم که او اونا بکشنش مجبور شد این کار رو انجام بده و وقتی که تمام آدم های تبدیل به سنگ شده رو آدم کردند خود اجوزه رو بستند و اون عثا رو به سمتش کشیدند و پیرزن تبدیل به سنگ شد و نتونست که دیگه از حیات خونش بیرون بیاد، اما دید که تمام آدم هایی که تبدیل به آدم شدند خیلی خوشحال شدند و از باغ بیرون رفتن و همه از تلسم پیر زن نجات پیدا کرده بودند اینجا بود که دو برادر شاد و خرم به سوی کاخ برگشتند، و چون پادشاه و دخترش اونها رو دیدن خیلی شاد شدند که اونها زنده هستند و جشنهای زیادی برپا کردن شاه هدایای بسیاری به اون دو تا برادر داد که تونسته بودن اون پیرزن، زن جنس رو به سزای اعمالش برسونن برادری که با دختر شاه ازدواج کرده بود به کاخ رفت و با همسرش به زندگی خودشون ادامه دادن و اما برادر دیگه به دهکده برگشت و پیش پدر و مادر پیرش به زندگی پرداخت بعد از سالیان سال شاه پیر فوت شد و همسر دختر شاه یعنی جوان قصه ما به پادشاهی رسید و با عدل و ادالت کشور رو اداره کرد شاهی عادل بود دوستان عزیز امیدوارم که از داستان ما خوشتون اومده باشه آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های صح را سفر کنیم جایی که پری ها و کوطول ها زندگی میکنن؟ کانال هزار افسان همونیه که دنبالشبال جایی که داستان های افسانه ای استطوله سر سر دنیا